در هنگام تهیه فیلم اصر جدید هم مانند فیلم روشنایی شهر پدرم مدتها در این فکر بود که فیلم را به صورت فیلم سامت تهیه کند یا فیلم ناطق. او هنوز بر این اخیده بود که فقط فیلم سامت میتواند مظهر هنر واقعی سینما باشد. و هر چه تخیل در تهیه‌ و دیدن فیلمی کمتر دخالت داشته باشد، ارزش هنری آن کمتر شود او احساس میکرد که فیلم‌های ناطق کمتر با هنر و بیشتر با تجارت پیشگی سر و کار دارد در آن موقع فیلم‌های خنداور فراوان به خورده تماشاچیان سینما می‌دادند. افراد تازه‌ای مانند ویلر و وولزی و جوبران ظهور کرده بودند. کسانی مانند باسترکیتون، لورلو هاربی و هارولد لوید که هنرپیشه کمدی قدیمی فیلم های سامت بودند با موفقیت در فیلم های بازی می ترقی سری سریه هارولد لوید با فیلم های پدرم را نگران کرده بود. او از خود میپرسید که آیا گروه سینما رواندگان از نوع پانتومیم تراشی کمیک او روگردان شده از طرف دیگر او نگران آن بود که آیا یک باره به فیلم ناتق روی آورد یا نه؟ علت نگرانی هم نه تنها این بود که هنوز گمان میکرد تیپ خودش یعنی ولی کوچولو جایی در سینمای ناطق ندارد بلکه به این علت هم نگران بود که آیا صدایش به درد شنیده شدن از روی پرده سینما میخورد یا نه؟ روح محافظ او که با روحیه اکراه از دست زدن به کارهای ناآشنا آمیخته بود، او را بر آن داشت که از رقابت مستقیم با هارولد لوید و سایر هنرپیشگان کمدی فیلم ناطق رو بگرداند. دوباره نسبت به فرگارد کوشلوه خود رحم و گذشت نشان داد و تصمیم گرفت عصر جدید را به صورت فیلم سامت تعیید کند. همه در هالیوود پدرم را دیوانه میپنداشتند. در حالی که کنندگان دیگر، مثل جس لاسکی، دیوید سلزنیک و سیسیل دومین در جستجوی راه اصلاح فیلم‌های ناطق بودند، پدرم لجوجانه به عصر فیلم فیلم‌های صامت چسبیده بود. مردم گمان می‌کردند که پدرم مرد بزرگ و بزرگوار سابقه حالی بوده است و دوران او گذشته است و قادر نیست خود را با تکنیک جدید تطبیق دهد. در همه شهر شنیده میشد، دیگر کارش در سینما تمام شده است. پاییز، فرار رسید. مادر ما به مشرق آمریکا برگشت تا کار خود را از سر بگیرد. من و سیدنی با اندوه به دخمه نظامی خودمان در بلاک فوکس برگشتیم. پولت به دستور پدرم موهایش را به رنگ طبیعی قهوه‌ای سابق در آورد. و در ماه اکتبر، تهیه فیلم اصر جدید آغاز شد روزهای نیمه فراغت پدرم که میتوانست برای خود زندگی کند به پایان رسید او ممکن بود سر قرارها و اشتغالات اجتماعی خود دیر کند اما حاضر به دیر رفتن سر کار نبود کسی هم نبود که به جای او کار کند معمولاً سر ساعت هفت صبح در استودیو حاضر بود زیرا دیر رفتن به استودیو خرش را زیاد می کرد و پول را هدر می داد. چون گروهی از کارکنان بدا تکلیف و ولو معتل می ماندند. معمولاً کیه راننده پدرم را به استودیو می برد. گاهی پدرم خودش اتومبیل می رند. گاهی فرانک همراه او می رفت تا در تعویز لباسهایش به او کمک کند و به عنوان رابطه او انجام وظیفه نماید. دوباره من و سیدنی فقط آخر هفته میتوانستیم پدرمان را ببینیم. اما در آن روزها هنوز اتحادیه ها کار چهل ساعت در هفته را برقرار نکرده بودند و چیزی به عنوان تعطیل روز شنبه وجود نداشت و پدرم در این روز کار میکرد. از این رو من و سیدنی در این روز امکان داشتیم همراه پدرم به استودیو برویم. خلق و خوی پدرم در این روزها بسته به وضع فینبرداری برداری روزه پیشین بود. اگر این وضعه بود، او با شادابی به سر کار می آمد و روز به آرامی می گذشت. در غیر این صورت، او خود و هم کارکنان را بیرحمانه به می داشت و روز به پدی می گذاشت. من به یاد دارم که همراه پدرم می رفتم و موقعی که او دستگاه ها و فیلم های گرفته شده را کنترل می کرد و بر روی نخشگه تحقیه فیلم در آن روز مطالعه امینه از اینکه پسر او بودم احساس اهمیت می کردم بالاخره کارگیریم شروع می شد و ما مثل روزهای کودکیمان از تماشای این که پدرمان جلوی چشممان به ولگرد اردکوچو تبدیل می شود، لذت می بردیم پدرم پس از گریم تا شب به همان حال می ماند و فقط هنگامی به صورت مشخص واقعی خود در که لازم بود سوار اتومبیل شود و از در استودیو بیرون برود. او هرگز از تیپ خود خارج نمیشد. حتی موقعی که کاری داشت خود را با آن کفش بزرگ این طرف آن طرف می‌کشید، کشید. شکلک می و با دست حرکاتی می کرد که همگی به شیوه ی فلگرد بود. برای من وستیدنی عجیب بود که این تیب که روی پرده آنقدر روحیه عالی و پرجوش داشت در عمل کچخلق و خشن باشد. به محض اینکه پدرم گیریم می کرد ما به دنبال او به طرف صحنه می رفتیم. که در حدود پنج سال آتل و باطل مانده بود. یک بار دیگر خود را در آن سرزمین جادویی و شاه پریان احساس می کردیم. اما ما حالا بزرگتر شده بودیم و ارزیابی و فهم درستی از صحنه‌های سینمایی داشتیم. دکوراسیون استودیو اکنون خیلی کاملتر از دکوراسیون آن هنگام فیلمبرداری روشنایی‌های شهر بود. جزئیات زمینه دکوراسیون در واقع گذشتی بود که پدرم به جهان فیلم سازی نوین نشان داده بود. صحنه داخلی کارخانه را نشان میداد. اما کسی اگر هزار سال هم فکر می کرد نمی بفهمد در این کارخانه چه می سازند. این کارخانه با دنده های درشت، چرخ های بزرگ و تصبه های پر سر و صدایش مانند چیزی بود که از روی وحشتناک و کابوس‌ها ها اخص شده باشد. ما چقدر این صحنه را دوست داشتیم که در آن پدرم معیوسانه نمی‌کشید خود را با سرعت حرکت دنده‌های نقاله هماهنگ سازد و هر جا که نقصی در تولید پیدا می‌شد و یا زنجیری میگسیخت به طور خودکار خود را تکان میداد. و چقدر از دیدن این صحنه مسخک که یک ماشین تغذیه خودکار خراب شده به پدرم پیچ و مهره و نان و گردوی مخلوط برای خوردن می‌داد فریاد شعف می‌کشیدیم و از دیدن تختهی که بارای در بود و هر بار با رفتن و بیرون آمدن پدرم روی سر او می از خوشحالی جیخ میزدیم. و بالاخره دیدن اینکه پدرم بعد از پیچ و خمهای فراوان معلقی میزد و به داخل آب می افتاد. در حالی که ما میدیدیم فقط یک وجب از جای تکان خورده است، برای ما عجیب و غیر منتظره بود. یک بالش مخفی در زید او گذاشته بودند که ضربه سقودش را بگیرد. سالهای بعد، پدرم راز موفقیتش را در کمدی برای ما اینطور توضیح می‌داد: شما برای آنکه خنده تماشاچی را در بیاورید، باید از چیزهای غیرمنتظره استفاده کنید. اما آن کلک و شیرینکاری که می‌گیرد، آن است که قبلاً تماشاچی انتظار آن را داشته باشد و برای دیدنش آماده شده باشد. به این جهت است که من همیشه مایلم کلک ها و شیرینکاری‌های قدیمی را به کار ببرم. مثلا همان صحنه شیریجه رفتن توی آب. آنقدر تکرار شده است که تماشاچی با آن آشناست و انتظار آن را دارد که اتفاق بیفتد. تنها چیزی که باید باعث نگرانی شما باشد، نحوه تعبیر و تفسیری است که شما برای تماشاچی می‌کنید. نحوه تعبیر و تفسیر پدرم همیشه بی‌نظیر است. او جنبه جنبه‌های مضحک کار و زندگی را از هوا بقاپد و با نوآوری و ابداع زیرکانه آن را به صورتی درآورد که کهن ترین شیرینکاری تازه و بدی به نظر برسد. تماشای بازی بازیگران از کناری برای من و سیدنی تفریح محسوب می شود. اما برای هنرپیشگان و کارکنان استودیو کار واقعی به شمار میرفت. اگر چه پدرم در این صحنه همان ولگرد کوچولو بود و در مقابل نیروهای جهان کاری از دستش آمد ولی در این حال، همان کارگردان مشهور و روبانگیز هم بود که به معنای واقعی کلمه سرنوشت همه کمپانی را در دست داشت. من از عده زیادی شنیدم که گفتند اه وقتی که من برای پدرت کار می کردم همیشه ترسان و لرزان بودم. این فقط شهرت او نبود که آنها را مرعوب کرده بود. این جاذبه شدید او به سوی کمال بود که همه آنها را سر جای خود می نشند. اگر اشیاء روی صحنه یک بند انگشت از جای خود خارج بودند نورها درست نمیتابیدند. یا اگر حتی مدادی را که ناکش کند بود به امیدادند دادند به کلی از جا در میرفت، و می مرد شورش ببرد. مگر من باید به تنهایی همه کارها را بکنم. در این مواقع کمتر ممکن بود آن زخم زبانی را که به فرانک می زد نزند. یادتان باشد من به شما پول می دهم که کارتان رو خوب انجام بدهید. پدرم ممکن بود از خطای آدم تازه واردی ولی اگر کسی خیلی زیاد و خیلی پشت سر هم خطا میکرد، او را فوری بیرون میکرد. مسئول اخراج واقعی آل بود که دفترش در خارج از محوطه فیلم برداری بود. چون پدرم در استودیونیز مانند خانه نمیتوانست شخصا دستور اخراج کسی را هر که ناشی و بیقابلیت بود بدهد. فرگز کسی را که به این ترتیب اخراج شده بود به کار نمیپذیرفت ولی اگر میفهمید خانوادهش در زحمت هستند به خانوادهش کمک مالی میکرد. به نظر او بیقابلیتی گناه بزرگی بود. برعکس اگر کسی در استخدام پدرم از خود قابلیت نشان میداد و آن را ثابت میکرد میتوانست مطمئن باشد که شغل دائمی خواهد داشت. پدرم از این لحاظ به کارکنانش میرسید و دقت میکرد پدرم در برابر هنر پیشگانی که نمی‌توانستند صحنه را اجرا کنند بیشتر از کارکنان استودیو صبر و حوصله به خرج می‌داد اما این صبر و حوصله او چنان ناراحت کننده و توأم با عصبانیت بود که بیش از داد و بیداد آنها را عذاب می‌داد گاهی اوقات برای آنکه از بازی و هنرپیشهی اثر مطلوب مورد نظرش به آید خودش آن را اجرا می‌کرد مثلا به آنها نشان میداد که چطور از اتاق بگذرند، چطور بنشینند و چطور حرکت کنند؟ اگر هنرپیشهای همان دفعه اول موضوع را درک نمیکرد حسره پدرم سر میرفت. خودش آن ژست حرکت را به سرعت برغ انجام میداد و با صدای آهسته و یک نبختی میگفت که چه میخواهد؟ اما هنرپیشه که نگران شروع بازی بود نمیتوانست حرف او را بفهمد و به طریق اولا نمیتوانست ژست او را تقلید کند. پدرم به صدای بلند میگفت نگاه کنید نگاه کنید نه نه دوباره دوباره دوباره و بالاخره موقعی که در آستانه ناامیدی بود آنچه را میخواست از هنرپیشه پیش در وقتی پدرم قسمتی از فیلم را برای تطفیق آن با سناریویی که نوشته بود می چشمان تیز بین او به جزئیات ناچیزی از قبیل وضع دست هنرپیشه یا سرتکان دادن او نیز متوجه بود. مثل اینکه که هیچ چیز از نظر او مخفی نمی ماد. گاهی از این تعجب کردم که وقتی پدرم صحنه را کارگردانی می کند، مثل اینکه با موجوداتی که فقط از گوشت و استخان ساخته شده و کار دارد. گاهی احساس می کنم که به آنها مانند عروسک ها و مجسمه های رفتار می کند و می خواهد آنها را طوری کنار هم بچیند تا صحنه زیبایی که در فکر خود دارد از آنها به وجود آورد. گمان می کنم همین خاصیت است که به فیلم های او آن سیمای سمبولیک و افثانه ای را می دهد. موقعی که پدرم اشتغال شدید فکری به کار خود داشت اصلا زمان را فراموش می کرد. ممکن بود وقت نهار برسد و بگذرد بدون اینکه کار تعطیل شود به خصوص اینکه هیچ کس روی آن را نداشت کار را قطع کند و بگوید ظهر و وقت نهار شده است گاهی ساعت دوی بعد از ظهر میشد که او به خود نمی و برای یک ساعتی کارکنان را وراخص می کرد من و سیدنی همیشه با پدرم در اتاق تغییر لباسش قضا می خوردیم اگر از کار خود راضی بود می گفت خوب بچه ها. از کاری که امروز صاب کردیم خوشتان آمد. اما خودش جواب این سوال را می دانست. زیرا حتی موقعی که کار میکرد چنان به ما می نگریست که گویی چشمانش جواب سوال را در چهره ما میخواند. حالا که بزرگتر شده بودم بهتر میفهمیدم. که پدرم چگونه چهارچشمی مراقب اثر بازی های فیلم کمدی خود روی تمام کارکنان استودیو، کارکنان صحنه، تکننسین فیلمبرداران و دکور سازن بود. همیشه به من می گفت که او از همان اول بازی قصدش آن بود که خودش خوشش بیاید و هر وقت که سعی کرده است که بازیش برای دیگران خوشمزه باشد بینزه از آب درآمده است. ولی من متوجه شدم که اگرچه خوش آمدن خودش را تنها راه مطمئن ادامه بازی میدانست ولی به خنده اطرافیان نیز احتیاج داشت تا روحیه او را تقویت کنند و به ادامه بازی تشویق نمایند. بعد از نهار دوباره پدرم به کار می پرداخت و تمام روز و گاه قسمتی از شب همه کارکنان را به کاروا می داشت. خستگی ناپذیر به نظر می آمد. همه جا می رفت و مثل سو به همه جزئیات توجه دقیق می کرد. نزدیک غروب موقعی که بقیه کارکاران از خستگی سر پا بند انرژی پدرم به وجه نمایان تری تظاهر می کرد. از دهان اطرافیان به نجوا شنیده می شود. این چاپلین و آجوبه است. هیچ وقت خسته نمی شود. فقط من و سیدنی حقیقت این موضوع را می دنستیم. زیرا فقط ما او را بعد از کار می دیدیم. بعد از زرهای جمعه که از مدرسه به خانه فراز تپه می آنجا را خالی می آفدیم. اگر مستخدمین هم در آنجا بودند، بدون پدرم خانه به نظر ما خالی می نمود. مثل اینکه فقط او بود که خانه را پر می کرد و آن را به جنب جوش حیات می آورد. مثل اینکه خانه همانند ما و مستخدمین خود را جزئی از او زائده ای از او که در مکان و فضا جای گرفته است به حساب می‌آورد. من و سیدنی به بازی با دوستانمان مشغول می‌شدیم اما همین که طولی می‌کشید و بعد از ظهر میگذشت به فکر پدرم می‌افتادیم. او چه می‌کند؟ کی می‌آید؟ وقتی موقع آمدن او نزدیک میشد ما معمولاً روی پلکان های جلوی خانه مینشستیم و آرنج های من را روی زانوانمان میگذاشتیم و چانه های من را در دست میگرفتیم و چشم به راه او ماندیم. بالاخره اتومبیل سیاه دراز او که کی پشت فرمان آن نشسته بود، دور میزد و می‌استاد و من و سیدنی شتابان برای سلام کردن به او میدویدیم. کی از اتومبیل بیرون می آمد و در آن را باز میکرد؟ میدیدیم که فرگرد کوچولو با همان گریم سینمایی خود با آن سبیل کوتاه در اتومبیل نشسته است سرش را به عقب تکیه داده آسوده و نیمه خواب است. کی با احترام می گفت آقای چاپلین به خانه رسیدیم. پدرم با آن شلوار گشاد که از خستگی حوصله عوض کردن آن را نکرده بود اما بدون آن کاته تنگ و با آن کفش های گنده و با کلاه ملون بسیار کوچکش ناگهان بلند میشد و نگاهی به خارج می انداخت. با حالتی نیمه خیره مانده ما را می و میگفت: هلو بچه ها، عجب روزی گذراندیم، عجب روزی. کی به او کمک می کرد تو از اتومبیل بیرون بیاید؟ من و سیدنی مشتاقانه می گفتیم پدر اجازه بدهید به شما کمک کنیم. کی یک دست به او را می گرفت و من و سیدنی دست دیگر را و به او کمک می کردیم تا ها بالا برود. آهسته به داخل خانه می رفت و بیش از هر کس دیگری که من در عمر خود دیدم بی روح و بی جان به نظر می رسید. ما به داخل خانه می رفتیم. از پلكان مدور بالا میرفتیم و از سرسرا میگذشتیم و به اتاق خواب او می رسیدیم. در آنجا پدرم توی رخت خوابش میفتاد من و سیدنی کنار تخت او مینشستیم و حرف میزدیم تا فرانک برسد و به او کمک کند که لباسهایش را درآورد وقتی فرانک پیدایش میشد من میپرسیدم بابا ممکن است ما همینجا بمانیم او چنان خابال بود که گمان می عصبانی شود اما او از ماندن و مصاحبت ما استقبال می کرد و می گفت البته البته بمانید و بعد نه به عنوان بیان یک فکر بلکه به عنوان معذرت خواهی می افسود چه خطر خستم خیلی خستم در همانجا دراز میکشید تا فران کفشها و جورابهایش پیراهن و شلوار گشادش را در دربیاورد با لباس زیر همانطور روی رخت خواب ولو میشد اما نشستن من و سیدنی در آنجا و تماشای او در این حالت چیزی بود که نمیتوانست آن را تحمل کند. بعد از آنکه کمی خستگی در میکرد از بستر بیرون میآمد و به طرف آینه میرفت و ابتدا به تصویر خودش و بعد من و سیدنی شکلک در میآورد. بعد ناگهان سبیل‌هایش را تکه تکه بر و در تمام این مدت وحشتناکترین شکلک ها را در بعد با اخمی ترش رویانه می‌گفت: اشکال کارها نرپیشگی این است 99 درصد زحمت و رخ ریختن و یک درصد استعداد و قریه و بعد از اندکی مقص و نگاهی تان به ما میافزود، و چه بهتر که یک درصد خوب باشد. سپس با صدای رسامی گفت خوب، ببینید دوباره شکل پدرتان شدم. و با این گفته لب بالایش را با الکل پاک می کرد و باز شکلکی در میآورد بعد لباس خانه یا لباس حمام می پوشید و به طرف حمام راه می افتاد. در حمام یک اتاق بخار داشت که در حدود یک متر و نیم ارز و دو سه متر طول داشت. یک سنگ مرمر و یک تکه در گوشه آن بود. وقتی شیر را باز می کرد، بخار از شیر می آمد و اتاق را پر می کرد. پدرم روی تخت سنگ مرمر راست می کشید و در حدود سروب با لباس حمام در آنجا می ماند. این اتاق آنقدر گرم بود که من به رهنه هم نمی توانستم بر آنجا بمانم. مثل این بود که این حمام بخار به وضع ای او را دوباره زنده می کرد. گاهی آن قدر سر حال بود که بعد از آن یک راست برای شام خوردن بیرون می رفت. گرچه همیشه قرار می که زود به خانه برگردد که صبح زود روز بعد به بلند شود و سر کار برود. اما بعضی وقت آنقدر خسته بود که حمام بخار هم حالش را جان می آورد. در این مواقع به رخت خواب می رفت و شامش را برایش بالا می بردند پدرم کار بدنی و سنگین و شدیدی در عرض روز نداشت اما من مطمئنم که خستگی او بیشتر به علت فشار روحی و عصبی بود زیرا این خستگی وقتی کار در استودیو شلوغ و به هم ریخته بود مشهودتر و نمایانتر می شد گاهی اوقات که من و سیدنی با مهرمانی و همدردی کنار بستر اومینش هستیم یواشکی به ما میگفت میدونید وقتی آدم حالش را ندارد که خوشمزدگی کند و باید خوشمزدگی کند این کار خیلی سخت است او بزرگترین هنر کمدی جهان بود دو تا بچه هشت نه ساله برای تسکین خاطر بزرگترین هنر کمدی جهان موقعی که حال خود را مساعد برای اجرای کمدی نمیدید چه می توانستند بگویند؟ پدرم به حرف خود ادامه میداد نمیتوانم از عاده این کار برایم نمیتوانم کسی را به خنده بیاندازم امروز روز بدی گذراندم خیلی بد بود بعضی روزها حالت افسردگی حتی قبل از رفتن به استودیو به سراخ او آمد در این می میگفت بابا جان من نمیخواهم به این استودیو بروم به زحمت خود را از رخت خواب پایین میکشید. به گذراندن روزی تلخ و سخت رضایت می‌داد و تسلیم می‌شد. اما همین که وارد استودیو می‌شد و کار را آغاز می‌کرد، یک شوخی، یک قسمت کمدی که آن را آنقدر خوشمزه تصور نمی‌کرد، موجی از شادی در او برمی‌انگیخت. با یک تحسین غیرمنتظره حالش جا می‌آمد و خلقش عوض می‌شد. چنان به کار خود جرد می شد که تا پاسی از شب گذشته به آن ادامه میداد. اما گاهی حالش جا نمی آمد و افسرد نمی ماند. در این مواقع تا حدود ساعت یک بعد از زهر کار می کرد و بعد همه کارکنان را مرخص می نمود و بعد از ظهر را خستگی در می کرد. صبح روز بعد باز به روی سحمه بود. کمتر میشد می که به کارکنانش این اینجور مرخصی بدهد و کار را قطع کند. ولی اگر چون این کاری میکرد، میکوشید آن را جبران نماید. اگر حالش را داشت، گاهی تا ساعت یازده شب، همراه کارکنان استودیو به شیوه معمول خود سخت کار میکرد. اگرچه تایه فیلم های پدرم بیش از فیلم دیگر کار میبرد و طول میکشید، ولی میزان و طرز کار او هم منظمتر، سختتر و بیشتر از استودیوهای دیگر شهر بود، چون تاره به کمال بود، بعضی کارها را دوباره و سه باره انجام میداد. به خصوص در مورد فیلم اصر جدید این موضوع به خوبی صدق میکرد. هر روز از خود می پرسید که این فیلم چه از آب در خواهد آمد. تاگه فیلم سامت او موضوع شایعات شهر شده بود. تایی دیگر حتی دوستانش با شک سرتکان می و روزنامه و منتقدان سینمایی در تر موفقیتش تردید داشتند و شاید گاهی خود او هم از این روحیه معافظه کاری خیش به وحشت میافتد.